اون کلمه‌ای که با اون وارد اسلام میشیم با گواهمون به اون کلمه اشهد ان لا اله الا الله با شهادت بر این که خداوند جزو معبود به حقی نیست که لازمه این که ما اقرار داشته باشیم به این که او فقط مستحق عبادت و پرستش این که ما قبول داشته باشیم که خدا خدا و آفریننده جزو نیست اشهد ان لا اله الا الله ولیکن این کلمه تنها به درد یک مؤمن نمیخوره که بگوید من فقط گواه میدم که خدا را قبول دارم و خداوند فقط مستحق پرستشه چون نمیتونه خدا را بپرسته جز با اون وحیی که نازل کرده بر پیامبران خودش اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله یعنی تنها اشهد ان لا اله الا الله بداده نمیخوره چون نمیتونیم خدا را بپرستیم جز اینکه شهادت بدیم بر رسالت محمد صلی الله علیه و سلم و گواه بدیم که رسول خداست تا اینکه خدا را بپرستیم چنان بر تی وحی کرده بله محمد صلی الله علیه و خاتم النبیین بود محمد سید الانبیا بود و سید البشر بود محمد صلی الله علیه و همه او را قبول داشتند به عنوان یک شخص امانت الدار، به یک شخص امین یک شخصی که دلسوز مردم بود لقد جاءكم رسول من انفسکم عزيز علیه ما عنتم حریص علیکم پیامبر اومد از خودتون، یک شخصی از خودتون، ای از فرشتگان نبود. ولی یک شخصی، یک شخصیتی که شما او را دوست دارید. یک شخصیت مهربان، یک شخصیتی دلسوز برای امت خودش. یک بشری مثل شما که میخوابید و میاشامید و میخوابید و میخورد. بله، پیامبر بشری مثل ماها بود. جزئی نبود، پیامبر فرستاده شد تا اینکه دین خدا را به بیاموزد. این پیانبر خدا هست که ما باید بهش اعتقاد داشته باشیم. نیومده بود رسول خداوند که به دستور بده که او را بپرسیم. نیومد که به بگه شما باید مال و تو را به من بدید. اتبعو من لا يسألكم عجرن و هم محتدون. خداوند هیچ وقت اجر از کسی نخواستند. نیومدن که از ما عجر را فقط به همون بگن که باید سر به سجده خداوند یکتا بزنیم فقط خداوند یکتا را بپرسیم ما باید اینو قبول داشته باشیم که پیانبران خداوند فقط اومدن همین دلسوز ما بودن بشری مثل ما بودن نه نفع و نه ضرری دست اونها بود نه خلقتی و نه آفرینشی دست اونها بود پیانبران خدا بودن بندگانی مثل ما بودن از علم غیب با خبر نبودن نمی که در آینده چی میگذرد و چه می, می شود خداوند چندین جا در قرآن به این مسئله اشاره میکند رسول الله صلی الله علیه و سلم از خطابی که به ایشان در خداوند میگوید که به امتش بگوید قل انی لا املکو لكم ضرا ولا رشده قل انی لا املکو لكم من مالکی این نیستن که به کسی آسیبی برسونند و نه هم این که منفعتی به کسی برسونند قل انی لا املک من مالکش نیستم، دست من نیست، من مالک زررها نیستم و نه هم مالک خوبی ها، اون خوبی ها و اون آسیب ها دست خداوند یک تاست، خداوندی که فقط میتونه آسیب رو از ما نگه بداره که به همون نرسه، اما رسول خداوند میبید دست من نیست، من ای مثل شما هستم، قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب بوکه خزینه های آسمانها و زمین دست من نیست من نیستم نیست که رزق روزی برسونم خزینه های آسمون و زمین دست من نیست و نه هم اینکه من علم غیب میدونم بله ما باید قبول داشته باشیم که این پیامبری که خداوند فرستاده از ما خودمون بوده و بشری مثل ما بوده عبد بوده بنده بوده بنده, بنده خدا بوده و ما هم نباید بنده رسول الله باشیم بلکه بنده خدا باشیم اومدن به یاد بدن بندگی خدا بندی پس ما باید قبول داشته باشیم ایمان داشته باشیم که محمد صلی الله علیه وسلم پیامبری از طرف خدا بوده قل انما انا بشر مثلكم بگو ای محمد که من بشری مثل شما هستم یوحا الی فقط تفاوتم با شماها در وحی است بر من وحی می شود پس ما باید قبول داشته باشیم که بر رسول الله صلی الله علیه وسلم وحش شده که به همون بگه ما بنده خدا باشیم و ما هم باید رسول الله رسول الله علیه وسلم تصیق بکنیم در اون ادعایی که داشته در اون حرفی و سخنی که داشته ما باید او را تصیق بکنیم اگر ما بگیم که حالا ما شهادت این را میگیم, میگیم اشده لا اله الا الله و اشده محمد رسول الله ولی که باورش نمی کنیم در حرفاش ما حق اختیار و انتخاب رو داریم الان این میگه خداوند را اینطوری ببرسید ما هم صاحب نظر هستیم ما هم میتونیم اظهار نظر داشته باشیم میتونیم خداوند را اونطوری که دل بخواهمون هست خداوند را صدا بزنیم و ببرسیم خیر. إن خلافة تسديقة إن تكذيب رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم خد وانت ميقيت إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله أجر المنافقين مدى أن قفت رسول الله سي والله يعلم انك لرسول الله هم مين انك تو رسول هستی یعنی تاکید داره بر اینکه تو رسول خدا هستی والله يشد ان المنافقين ان المنافقين لكاذبون خدا گواه میده که منافقین در در که تو رسول خدا هستی دروغگو هستن ما باید صادق باشیم و رسول الله را الله علیه و وسلم تصدیق بکنیم در اون اخباری که بهمون گفتن در اون فرمایشاتی که بهمون داشتن و باید ازش اطاعت بکنیم الازمه لازمه،, لازمه ایمانمون به رسول الله صلی الله علیه و وسلم هست لازمه ایمانمون به رسالتش به اینکه پیامبر خدا هست ازش شتاعت بکنید و ما اتاکوم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا اون چیزی که پیامبر بهتون وردن که انجامش بدید انجام بدید و اون چیزی گفته انجام ندید انجام ندهید و بدانید که اطاعت از رسول خدا اطاعت از خود خداست من یطاع الرسول فقط اطاع الله کسی که پیروی بکنه از رسول خدا اون شخص پیروی کرده از خود خدا رسول الله صلی الله علیه و وسلم می‌فرماید اذا عن شیء فاجتنبوه اگر از چیزی نهیتون کرده اجتناب بورزید رسول الله صلی الله علیه وسلم اگر گفتن کاری انجام ندیم بگیم و چش چش ما انجامش نمیدیم اما در بحث اینکه ما اوامرش رو انجام بدیم اون ب... به اندازه توانمون انجام بدیم همونطور که خودش میفرن اگر امرتکم به به امر منهم ما اگر ام بهتون کردم بیکاری به شما اون اونطوری که در توان شما هست در حد توان خودتون اون کار را انجام بدید بله به خاطر اینکه ما شک نداشته باشیم پیامبر محمد صلی الله علیه و رسول خدا بوده او را تأیید کرده با معجزاتی یک سری معجزات بهش داده، یک قسمتش ما قبلا اشاره کردیم، معجزاتی که خداوند در قرآن بهش اشاره کرده بر زبان رسول الله صلی الله علیه وسلم که خداوند در قرآن یاد میکنه از رسولش وما ینتق عن الهوه این هو الا وحی نوحا که رسول خدا از خودش صحبت نمیکنه بلکه وحی از طرف خداونده خداوند محمد صلی الله علیه وسلم تأیید کرد با معجزاتی که بهش داده بود، معجزاتی که مشرکین دیدن. اقتربت و وانشق القمر قیامت نزدیک شده و ماه هم دونصفه شد بله خیلی از صحابه این رو دیدن و نقل کردن برامون چون چرا در صحیحین داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که مشتکین معجزه خاصن اشاره میکنه به ماه و ماه دونیمی میشه و الانم علم امروزی هم ثابت میکنه که ماه از وسط دونیصفه شده دونیمه شده و الانم که روی هم نشسته بین دو هاش بین اون دو طلبه با هم فاصله هست یک لبش بالاتر از لبه دیگر و وسط اون شکاف هست بله بریم به سایت ها نگاه بکنیم سایت ناسا و دیگر سایت هایی که هست ببین چطور ماه دو نصف شده دو نیمه شده بله این تایید نبوت رسول الله هست تایید پیامبریش هست از طرف خداوند و برگزیدگیش خداوند او را برگزیده و یک پیام خاصی بهش داده که بهمون برسوله و اونم اینکه خداوند یک تا را بپرسید به خاطر اینکه فقط از او اطاعت بکنیم. و اطاعت از رسول خدا اطاعت از خود خداست معجزات غیر از ماه معجزات دیگری هم هستند که خداوند در قرآن بهمون گفته مثل معجزه جنین و مراحلی که در رحم مادر تیمی کند، از اون مضغ بودن و معلق بودن از خون لخته و سپس گوش و سپس استخون و بعد از استخون گوشتی که روی استخون می, می آید فمکسون العظام لحما که الان با این همه که علم پیشرف شده الان پزشکان نرم بهش پی می برند در صورتی که 1400 سال قبل خداوند این معجزه را وح کرد در اون دورانی که نسونوگرافی و نه دیگر دستگاه ها بودند اون دوران خداوند چنین وح میکند که جنین این چنین مراحل را در رحم مادر تیمی کند عرب چی می‌دونستان چه دوسیله‌ای داشتن که بدونن که جنین چگونه در رحم مادر به وجود میاد چطور روز به روز رشد می‌کنه نمی‌دونستان این معجزات هست و معجزات دیگر که ما ندیدیم رسول الله صلی الله علیه و سلم دستان خویش را در آب می‌کردند در کاسه آبی لشکری را با او آب می‌نوشیدند که صحابه می‌گویند دیدیم که آب مثل یک چشم از لابلای گوش و پوست رسول الله صلی الله علیه و وسلم بیرون میاد بله اینجوری معجزاتی رو رسول الله صلی الله علیه و وسلم داشتن یک معجزه نیست دو معجزه نیست سه معجزه نیست که اثبات نبوت و اثبات پیغمبری پیامبر علیه الصلاة و السلام باشه اون چیزی که هست خداوند این معجزات از قرآن و دیگر معجزات را به رسول صلی اللہ علیه وسلم داده و همچنان خیلی از اون معجزات را پایدار گذاشته تا اینکه که شک و تردیدی نداشته باشیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم پیامبری، پیغام آوری از طرف پروردگار بودن اومدن پیغام خدا را بهمون بگن و ابلاغ بکنن و بدونیم که لازمه این ادعا، این شهادتی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله لازمش غیر از اون چیزهایی که گفتیم که باید از رسول الله صلی اللہ علیه وسلم اطاعت بکنیم و باید قبول داشته باشیم که بشری از ما بوده و همچنین این که پیانبر خداوند دعوت نداده ما را که او را بپرسیم غیر از این چیزها باید اعتقاد داشته باشیم که رسول الله صلی اللہ علیه وسلم الگوی ما هست الگو ما در رفتار نیک در اون رفتاری که داشته در اون رفتاری الا میخواد چه رفتارش با خداوند باشه از اون عبادتش از اون دعاش و چه از نماز و روزه‌اش رسول الله صلی الله علیه و وسلم الگوی ماست خداوند میگه لقد كان لکم فی رسول الله اسوته حسنه برای شما در رسول الله صلی الله علیه و وسلم الگوی نیکی هست و لازمه این الگو بودن اینه که ما ازش الگوگیری بکنیم نه اینکه بدونیم که اون الگوست نه الگوی گیری بکنیم مثل او باشیم و خداوندم در ازای ادعای ما که محبت الله داریم خداوند در ازای این ادعا اتباع و پیربي از رسول الله صلی الله علیه و وسلم گذاشته قل ان کنتم تحبون الله ای محمد بگو ان ها اگر محبت الله را دارید قل ان کنتم تحبون الله فتبعوني از من پیروی بکنید اطاعت بکنید راه راه من باشید خیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه وسلم همیشه رسول الله صلی الله علیه و سنت این جمله در خطبه هایشون تکرار میکردن بهترین راه راه روش ما پیامبران هست راه روش من پیغمبر خدا هست رسول خدا هست بهترین راه راه رسول الله بوده، علیه الصلاه و السلام ما باید اگر راهی اومد که در تضاد و در مخالفت با راه رسول الله صلی الله علیه و وسلم بود باید راه رسول الله رو بگیریم و لازمه ادعای ما اینکه خداوند را دوست داریم اینی که از او پیروی بکنیم از رسول الله صلی الله علیه و سلم پیرایی کنید اگر کنتم الله فتتبعونی و در ازای این اتباع و پیروی و این ادعا با عمل نه که فقط ادعا بکنیم که دوست داریم جشنی بگیریم برای تولد رسول الله یا نمیدونم بیایم شعار بدیم و سرود بخوانیم خیر ادعای محبت خداوند و محبت رسولش با این نیست که ما بیاییم شعار بدیم سرود بخونیم. نه در اتباع پیروی هست فتبعونی یحباب کنم تا اینکه خداوند شما, خدا این شما را دوست داشته باشه یحباب کنم الله و یاقفر لکم زنو بکم و خداوند جز اینکه شما را دوست میدارد گناهان شما همی هم آموزد و ما هم باید غیر از اینکه لازمه ای محبت خداوند این هست که رسول الله از رسول است اتباع بکنیم لازمه محبت الله هم اینه که ما رسول الله رسل الله از خودمون و از همه بیشتر دوست داشته باشیم روز عمر بن خطاب رضی الله عنه میگد یا رسول خدا من تو از همه کس بیشتر دوست دارم جز از خودم فرمودن رسول صل الله صلی الله علیه و سلم نه یا ای عمر نه هرگز ایمانت کامل نمیشه تا اینکه من منو از خودم بیشتر دوست داشته باشی عمر بن خطاب یا یا رسول الله از خودمم بیشتر تو را دوست دارم هیچ وقت نمیاد مخالفت با رسول صل الله صلی الله علیه و سلم بکنه در هوای نفسش یعنی اینکه یا رسول الله وقتی که تو را تقدیم کردم محبت تو را بر خودم اینی که دیگه تو الگوی منی و هرچه تو بگی من انجام, انجام میدم بله این محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم اونجا هست که بعد از که عمرش این حرفی میزند رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید ای عمر الان ایمانت کامل شد بله ایمان کامل اینی که ما پیری از رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنیم و محبتمون نسبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم حقیقی باشه با عمل باشه با کردار و رفتاری مثل رسول الله صلی الله علیه و سلم دروغ نگیم غیبت نکنیم تهمت به کسی نزنیم خوب رفتار بکنیم خند تو صورت دیگران بزنیم این لازمه رهرو بودن راه انتخاب راه رسول الله و رهرو بودن راهش هست پس ادعای محبت کافی نیست نه محبت الله و نه محبت رسول خدا بلکه پیروی از رسول الله صلی الله علیه و خداوند این محب... این پیروی را معیار محبت قرار داده ما باید قبول داشته باشیم که محمد صلی الله علیه و رسول خدا بوده پدر یکی از ماها نبوده و اومده که دین را کامل بکنه و با اومدن رسول الله صلی الله علیه و دین کامل شد دیگه نیازی به کسی نیست که دین خدا رو بیاد کامل بکنه الیوم اتملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتي رضیت لکم الاسلام دینی دیگه دي بر شما کامل کردم نعمت رو بر شما کامل کردم بله نعمت بحر ما کامل کرد و از اون اسلامی که رسول خدا خداوند اعلان رضایت میکنه و ورضیت لکم الاسلام اون اسلامی که رسول خدا آورده او بود خداوند اعلان رضایت کرد جز اون اسلام اسلام دیگری پسندیدنی نیست پیش خداوند یعنی ما چنان را خداوند را طلب که رسول الله خداوند را می‌پرسید نه راهی که آباو اجدادمون گذاشتن باید ببینیم چطور خداوند در قرآن و در سنت صحیح از ما خواسته که او را بپرسیم او را همون طور بپرسید و بدونیم که دیگه بعد از رسول خدا دیگه پیامبری نیست ما کان محمد اب احد من رجالکم رسول الله وخاتم النبیین محمد بدنی یکی از شما نبود خاتم النبیین بود و پیانبر خدا و کان الله بكل شیء شیئا علیم و خداوند به هر چیزی دانا بود و با باید اعتقاد داشته باشیم لازمه شهادتین اشهد ان محمد رسول الله این است که ما قبول داشته باشیم که رسول خدا فقط خاص ما مسلمانان و مؤمنین نبوده بلکه برای برای تمامی بشریت بوده خاص عرب نبوده ایمان باید داشته باشیم که رسول خدا برای همه برگزیده شده برای همه بوده همونطور که خداوند میگوید و ما ارسلناک الا کافه للناس بشیر و نذرا ما ترى نفرستیم مگر برای تمامی مردم که اونها را به آنها بشارت بدی و هشدار بدی از جهنم خداوند این اعتقادات ما هست نسبت به پیامبر خداوند حتا که اعتقاداتی که ما در محمد صلی الله علیه و داشته باشیم در رسول خدا داشته باشیم بیش از اینه که لازمه اشهد ان لا ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله است بیش از اینه ما ختم بحثمون را این آیه قرار میدیم از آیه قرآن که خداوند در وصف رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید اون پیانبری که فرستاده شده برای رحمت, رحمت للعالمین رحمتی باشه برای تمامی بشریت خداون از بس فرشینین میگوید لقد جاءكم رسولم من انفسیکم عزیز علیه ما عنتم حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم بله پیمبر خدا پیامبری بوده که برای ما فرستاده شده عزیز برش خیلی سخت میگذره بر مؤمنین که بر اونها سخت بگذاره رسول الله صلی الله علیه وسلم نیمدن که بر ما بر دوش ما کولباری سنگین بذارن برش سخت میگذشت اگر بر ما سخت میگذشت دلسوز ماها بود عزیز علیهما انتم اون معاناتی که شما دارید رسول الله صلی الله علیه و سلم اون معانات شما برش سخت بود یعنی نمیده که بر شما سخت بگیره رسول الله صلی الله علیه و سلم دلسوز شما بود حریص علیکم حرص داشت بر هدایت شما بود اومده بود که شما را هدایت بکنه شما را نجات بده فکر نکنید رسول الله صلی اللہ علیه و سلم اگر دستوری فرمایشی به شما داده می‌خواهد شما را گمراه بکنه یا شما را شکنجه بده یا بر شما سخت بگذارد خیر حریص بود بر اینکه شما هدایت بیابید و بدانید که این راه هدایتی که داشته و به شما اوورده بدانید که درش رحمت هست و بالمؤمنین رعوف و رحیم و برمؤمنان رعوف و رحیم بوده مهربان و دلسوس بوده و آخر و دعوان الحمدلله رب العالمین و صل الله على محمد و على المحمد